دوتا مطلب میخواستم میگم. یکی تقریبا جواب یه سوالی که کسی دفعه گذاشته مطرح کرده که در حقیقت یکمی بی جا نبوده ولی مورد سوی تفهم. یکی پرسید که اینا مثلا جزب منابیان یه شناسی یه سب میشه یا نه؟, نه اصلا یعنی موضوع موضوع منابع شیعه شناسی نیست موضوع تحقیقات شیعه شناسی یعنی منابع شیعه شناسی مربوط به فهمی که یا به اصطلاح سوالی که طرح میکنیم. یعنی ما سائل در شیعه شناسی به اصطلاح با مرکز جامعه شناسی یا روانشناسی یا علوم انسانی مختلف، یا نه، بحث عقایدی یا به اسطلاح خود مکتب شیعه. خب، اگر بحث جامع شناسی، روانشناسی، اقتصاد و سایر موضوعات به اسطلاح علوم انسانی، اینجوری که بعضی از دانشگاهی در قوم یا بنیاد, یعنی به مر... به نام بنیاد یا مرکز شیعه شناسی اینجوری هم در نظر می گیرن یعنی به اسطلاح جامعه شناسی جامعه های شیعه چه موجود چه گذشته خب بنابراین یعنی باید یک یعنی روی آمارگیری ها مثلا گذارش های تاریخی گزارش های اقتصادی اینجوری اگر نه ما میخوام واقعا از روی منابع شیعه روی مکتب شیعه کار کنیم که منابع شناسی همون منابع شیعه یعنی به اسطلاح کتب روایی تاریخی و نمیدونم هر چی جز برای شیعیان منابع و اینم تقریبا هم از یک جهت مربوط به مشخص به زبان فرانسه که من اضافه کردم. چرا مثلا جو مثل تحقیقات شناسی به غربی نگذاشتم چون یک ویژگیه تقریبا مال تحقیقات شیع شناسی به زبان فرانسه که بیشتر روی مکتب کار کردن و میکنن، در روی مسائل جامعه شناسی و علوم و انسان شناسی دیگر برخلاف اتفاقاً هم تحقیقاتی که به زبان انگلیسی هستند یعنی منابع در برای شیعه به زبان انگلیسی فارابونا نوعان بیشتر اصطلاح نقشه شیعه یا یک بخشی از شیعه مثلا علمای شیعه در فرض کنیم که حرکت استقلال عراق مثلا یا در جنوب لبنان یا در پزدیانی به همش تقریبا یا نو دو درصد یا پنج درصد بگیم افراد نکنیم مربوط به تحیفات انسان شناسی یعنی یا جامعه شناسی، یا اقتصادی، یا روان شناسی. این به زبان انگلیسی. قبلا در تحقیقات به زبان فرانسه تا تا آنری کربان بگیم که تقریبا اینجوری هم بوده. البته به اندازه خیلی کمتر. به خاطر امون اون که گفتم جزوه کشورهای استق... استعمار شده ی فرنسه، کمتر شیعان وجود داشته ولی تحقیقات که در برای فرض کنیم که شیعان در لبنان مثلا یا در سوریه که به زبار فرنزست مثلا قدیم داریم نوان هم هم همون هدف به یعنی حالا چه هدفی هرچی باشه نوان چیزهای به اسطلاح جامعه شیناسانه اونجو. ولی از و حتی این دو, تا دو نفر که قبل از یاد کرده بودم که قبل از کوربن بوده، یکی در ارنوژدوم، عاید گوبینو، لایک کتاب اساسیش، کودکی فلسفی، مکاتب و فلسفه ها در, خوا... در آسیای میانه، معلومه به مکاتب و فلسفه علاقه داشته. یا لوی مسینیون که متخصص تصاف باز هم به جنبه های معنوی و رفانی بر تعلق, تعلق داشته. انوز تا هنوز تو اونزمان به طلاح روحیه غاب بر جامعه مستاشیقان همین بوده که، و مخصوصاً شناسان که شیعه یک حرکت یا یک در اصل یک حرکت و جنبش سیاسی بوده فقط و بعدای با یک نگاه تاریخ نگارانه داشتن به تطورت مثلا مثلاً وقت کسی در برای آقاید اسماعیلی مثلاً یا دوزده امامی یا اینا مدین که خیلی جانبی، یعنی یک فصل کوتاه یا دوست مطلب عزازی، بله. این ها مثلا از امام ساده به برد جدا شدن اینجوری. و به این تقریباً بس میکرد. یک نمونه از این تحقیقات، یعنی حتی در زمان نزدیک، به این کتاب به زبان آلمانی. به نام دی شیا، یعنی شیعه 1988 به زبان آلمانی نوشته شده و 95 به فرانسوی ترجمه شده. ملی هینز حلم که یک اسلامشناس معروف آلمانی با که به زبان فرانسی ترجمه شده جزبی منابع ما من نیست اگر این کتاب فقط سرفصل ها نگه کنیم شیش فصل در دویست و صفحه حدودا فصل فصل اول نشعت تشاییوم یعنی ظهور تشایی و درست ظهور و بس فوری مطلب یا یک نگاه تاریخی و تاریخ نگارانه فرقش بعدا می‌بینیم با کوربن خیلی منطلبانه بگن به نظر تاریخ نگارانه نگه نگار میکنه نکه مغرفت با تاریخ و علم تاریخ باشه دارم. مخالفم با این که همه چیز همه مطالب با های تاریخی تفسیر کو تعویل کنیم. بله بگیم که مثلا اگر این چیزی شده مثلا که فلانی مسیحی بوده مثلا مستن... این به خاطر اینکه در این تاریخ مثلا نمیدونم چه انقلاب دانشجویی بوده و این کتاب چاپ شده و این ان یعنی چیزای بیرونی در حالی که یا مثلا فرض کنیم که محمد در مکه و مدینه ایسا مثلا در فلسطین این به شرایط تاریخی اون زمان تفسیر بشه کلن طبیعتا در شرایط زمان خودش زندگی میکنه. کنه اون که واضحه ولی یا همه به اصطراح تصمیمات و به اصطراح تعلیمات و یک شخص، هرکی باشه یعنی نه فقط پیانبرم میشه فقط با اعلالهای تاریخی تفسیر کرد، این نه. مخصوصا در چیزهایی که در جان انسان سر و کار داره و مخصوصا وقتی که ما افرادی که مثلا حکما و عرافا که اتفاقا از جامعه خودشان گریز بودن، یعنی بیشتر اوزلت نشینی ترجیح میدادن. خب، الان میخوام اونا با تبجامه خودشان تفسیر کنیم. که خیلی متنقیده. ولی در... ز... یعنی تا زمان کرمند و زمان بیشتر هم بگیم همون مرکز ایرانوس که ذکر کرده بودن. در یک مرکز که در یک... vila dar suisse tasizkar ne budanou افراد مثل gustav jung ke dar bade dar اونام یک انقلاب اولی می انقلاب در روانشناسی ایجاد کردید یعنی به فرویدی بودن تو یونگ ماده او یک شاخه دیگه ایجاد کرده میرچیای یاد دیشماس معروف که اونام یک تاردین شناسی همون از نگاه تاریخ نگارانه و به اسطلاح تفسیر مطالب دینی با اقتص... شرایط تار... اقت... تاریخی یعنی اقتصادی، اجتماعی و اینا هر روزگار. اونم یک انتلاب دیجر کرده و یه راه دیگه و افراد دیگر بازم میشه گرشوم شلم تخصیص ارفان یهودی و افراد و وکرمان که یکی بودش تقریباً جان مرکز بوده. نه قبل از کربان؟ یعنی یک کمی قبل از کربان. من با این و ایناستی. خب اونم این به احساس اخساس میکردن این اهمیت به مسائل جان. جان انسان چون تقریبا همین این ها تقریبا جوی معارف جان انسان که میدیدن در این علوم انسانی که اینجوری که مطرح میشن با این جور نمیشه به خاطر این که همه از بیرون تفسیر میکنن اه... یا به یا از بیرون یا با, با مدون یعنی مثلا فرض کنین که در جا روانش نصیر فرویل هر چیزی که در جان انسان اتفاق میفته با پایینترین ترین امور انسانی تفسیر میشن. درست؟ و یوم اونجا گفت که خوب چرا ما فقط نا بگید چرا نمیشه یک نتیجه چیزای بالاتر در جان انسان باشه. درست؟ بس این بوده و این وقتی که یعنی کربن یک مقدر چیزهایی که شاید برای اونم مخصوص یعنی یک نیازی احساس می ولی دقیقا مثلا شاید شکل نگرفه بوده ولی این خودش میشه یک تحقیق خودش باشه که مثلا این کتاب تقریبا یک نوع شروع در این نوع تحقیقات در برای آنری قربان بوده به زبان انگلیسی the world turned inside out یعنی اینس تورنید انساید اوت طاجی میشن ولی منظور یعنی مثل یک دستکش که داخل وقتی میکشینش داخلش میشه بیرونش شود درست دقیقاً در همینه یعنی در حقیقت یعنی ما خروج از خود خارج شدن از خودمون در جستجو درونی ما رای خروجی از خودمون پیدا می درست این همون معنی. بله بله دقیقا د دقیقا دقیقا, دقیقا. دقیقا. دقیقا. بله. هر کدوم در تخصص خودش مثلا اون یکی دین شناس، یکی به یعنی علوم ادیان یعنی ادیان شناس میرچائیلیاتی یکی روانشناس یکی بیشتر اسلام شناس و فیلسوف بعد یک جامعه شناس هم داشتیم که از دوستان کربان به نام ژیل بردوران که اون تمام مطالب مربوط به بوده خیال و عالم مثال وردی در علوم انسانی و مخصوصا در خیلی از شابر خدیه در علم سیاسی و جالب،, جالب اینه که با این یک دایره با یک دایره به امو اصل مطالب که فارابی ارائه کرده چون فارابی هم علم سیاست یعنی علم تبدیل حقایق عقلانی به تمثیل‌های خیالی برای نوع مردم که در مرتبه خیال هستند نه در مرتبه عقل مخص و بلاه ریالن هم تقریبا جا افتاده در یعنی همه نمیشه گفت ولی خیلی ها از متخصصان علم سیاست هم قبول دارن و مت... توافق پیدا کردن که گرچه هم امره مقدس از سیاست بیرون کردیم ولی چون نمیشه چون اصلا عالم زندگی سیاسی مامون سطح خیاله جایگزین یک ویرجین که یعنی یه ویرجین این جهانی از همون سمبل های آنجهانی که بوده مثلا بهشت مفقوده خوب شده مثلا همون جزیره های طلایی که میخوان تغتیلات بران اونجا. مثلا قبله تبدیل شده به پرچم کشور مثلا. که دور برش هم باید هم کنن. این اینجوری چیزها، یعنی بالاخره نمیشه. این بعد از انسان به زوداییم کاملا. یعنی این بود هست، اگر چیزی از اینجا خالی میکنیم، چیز دیگر جایگزین میشه، خود به خود. بخشید. سلام یه مرده نسبت به سؤال شما چیزهایی گفتم صحیح میگم ولی چون شما پرسیده بودین نگه این هم مثلا جز به منابر شیعه حساب میشه گفتم که نه اصلا نمیشه ولی من مثله اینه که مطلب که جمعای کنم مربوط به شیعه. منابع شیعه شناسی نیست تحقیقات شیعه شناسی درست که این تحقیقات شیع شناسی اگر در برد مکتبی باشن منابعشان همون منابع شیعهی که شیعیان دوران منابع میپذیرند و اگر تحقیقات از نوع انسان شناسی مثلا جامعه شناسی، تاریخ، اقتصاد اینجوری اون وقت منابع، همون منابع علوم انسانی که آمار میژه گزارش تاریخی تحلیل‌های سیاسی و اینجوری. درست این دو با اتفاقاً تحقیقات فرانسوی زبان شناسی فرانسوی یک ویژگی در که اومده این تحقیقات در بود این فکری ایدئولوژی به اصطلاح مکتب الهیات فلسفه از این بودن و تحقیقات به خاطر اینم تاکید کردم فرانسوی زبان. چون اگر میگوییم تحقیقات غربی، شیعه نصی غربی، شامل شیعه به تحقیقات انگلیسی زبان که اول خیلی فراوان هستند و دوم نهان بیشتر در ابعاد تاریخی، سیاسی، اجتماعی. ام اقتصادی و اینا. درست؟ حالا اتفاقاً دار برای مسئله یا اتفاقاً یعنی به خاطر بعضی واقعی تاریخی مثلاً مواقع جغرافیایی در برای شیعیان نوشته شده ولی اگر همونجا به جای شیعیان بودیست ها زندگی می مثلا مثلاً در این خاورمیانه در برای بودیست میشد. یعنی این تحقیقات به خاطر وجود مثلا یک حرکت مشروطه در مثلا زمان قاجار به خاطر وجود نفت در منطقه شیعنشین در عربستان به خاطر وجود یک حزب الله در جنوب لبنان به خاطر وجود حدوث یک انقلاب در ایران به خاطر این اینا تحقیقت انسانشناختی در, جا در با جامعه شیعه انجام شده. درست؟ ولی کاری با تفکر اقاید و الهیات و فلسفه و ارفان و اینه شیعه شیعان کاری ندارن. درست؟ ولی در مقابل اکثر و غالب تحقیقت به زبان فرانسه به این مطالبه. تفکر شیه، فکر تا تطور و تحکرات در الهیات شیه، اختلاف نظر در برای مسائل الهیاتی بین مکاتب شیه مختلف، اسمایلی، شیخیه، این دوازده امامی، زیدیه اینجوری، درست؟ خب برای اونا که اینجوری در این موضوع می نویزن، منابقشان که همون منابق کتاب بلاخره یا اسمایلیه یا شیخیه یا دوازده مامی، یا زیدیه یا عرافه و حکمم. الان میگفتم مثلا یک نمونه نزدیک هنوز یعنی به محاصر میشه گفت. یعنی هنوز هنوزم زنده است، اینسانم که از نگاه نگاهه که هنوز در دقیقات انگلیجی زبان و المنگی زبان غالبه و که کلن نوعن در تاریخ خواهر شناسی خواهر میران بله خواهر شناسی هم استشراقی بوده تاریخ نگارانه تاریخ نگاه تاریخ نگارانه که به اسطلاح همه چیز تفسیر بشه با شرایط تاریخی یعنی اقتصادی, سیاسی, افتشماعی زمان هر زمانی که قربن اتفاقا در محابله این استاده بود خب نمونه اولی نمونه بعد جواب قربان ببینیم یکی امون کتاب این سال که به نام دی شیعا به زمان علمانی به بفرانسوی لشیعیسم ست شده 95 پنج ولی نوشته شده 88 هشت به زبان آلمانی. سلم که جزوه اسلام شنازان معروف آلمانی ولی در یک کتاب دیویست فصل افتاد صفحه و شیش فصل بزرگ خواهیم دید که چقدر برای مثلا اقایی یا الهیات یا فکر یا عرفان و فلسفه چقدر جایگاهی دا داره پس گفتم شش فصل فصل اول ظهور تشریخ از اول میرفتیم تو تاریخ تاریخ و یعنی من سوال کردم بعدا من جواب شما میخوام منتظرم شاید بیشتر بازم بیان که اگر سوال شد بودی از شما که تشاییو چیست با چی؟, چی میخواستی یا چی جواب میدادیم یا به نظاه چون چی با جواب داده بشه ولو هم کسی اطلاعاتش نداره ولی میگه انتظار شخص این اینه اینه, اینه. او کسی که معرفی میکنه conhece تشایو دیشی در یک جامعه غربی شروع میکنه تجی امون ظهور تشایو چی اول اسم تعریف تشایو در لورات چیست تعریفش چیست منابع و مراجع این همیشه در ظهور تشایو در زیر شاخه زیر تیترا بعد امه اسلامی بعد از وفات پیامبر خلافت علی چهار سال خلافت علی ا منتظری این ببین الان من مطلب که دارم میرم می برای برای ما اهمیت نداره از چه استفاده کرده یعنی بلاغیر به عنوان یعنی هر مستشرقی از همه منابع استفاده میکنه. طبیعیه. نه، ولی من که اصلا کاری ندارم به چی میخواد برسه من. الان اینجا من دارم میگم یک اصلا کلن این نگاه نگاه درستی نیست. نگاه تاریخ نگرانه اصلا نگاه درستی نیست. درست؟ بله به هیچ مجم. بابا شما مثلا می‌پوشی از من که مسیحیت چیست بعد شروع کنم بگم که آقا در قرن دوم سوم چی بوده که هیچ مسیحی این چیزها اصلاً نمی‌دونه شاید فقط پاپ روم می‌دونه درست شما می‌خواین بدونید که مسیحیات به چه اعتقاد دارن، نه یا می‌خواین بدونید در قرن اول چه اعتقادی داشتن بس چه بخشی می‌خواد بکنه؟ نه یعنی کسی نمیتونه همه ابعاد شما میتونید در یک کتاب دیویست و هفته هم از تاریخ، هم از جغرافیایی هم از اقاید، هم از فلسفه هم از ار... همه چیز بزر... بگذاریم میتونید؟ خب، مدعی نیست اصلا یعنی اصلا به اکثر توادع یعنی اصلا یک صفت مستشرقان همون توادع کجا مدعی هم یعنی که ما همه چیز میگیم؟ اتفاقا امیر جزو جوزو مستشرقان نیست، ایرانیه، مستشرق نیست، شیه هم هست اتفاقا. اتفاقا نمونه مستشرقی نیست، نمونه ضد مستشرقی. چرا نوارد؟ درگاه کاری شماستان داشته باشیم؟ اگر میتونیم یعنی یعنی یعنی برسیم به مطلب، یعنی yani, همه چیز گفته میشه، درست؟ اول یعنی yani, ببینیم کسی که یعنی yani, نگاه تاریخ نگارن چی نوشته؟ درست شما ما کی گفتیم باید ندید بگیریم شما شما نمیگذری یعنی من گفتم ویلون ل مسلیم گفته چرا؟ ویلون ل مسلین من نگفتم ویلون مسلیم تازه وقتی که ویل مسلن می خواستم نفس بگیرم گفتی چرا گفتین ویلون لسلن تاریخ نگاران نه تاریخ شاسانه. فرق میکنه چه فرقی داره تاریخ شناسی که تاریخ میخواهی بشناسید تاریخ نگاه تاریخ نگارانه که همه چیز با تاریخ تفسیر میکنید اگر مثلا پیغمبر در مدینه مکه به وجود آمده به خاطر شرایط قبائل اون زمان به شرط این, این این این این همه چیز تفسیر میکنید با تاریخ اگر بودا به هند در سال فلان آمده به خاطر شرایط هند اون زمان اگر نه اصلاً به وجود نمیاد <تصفيق> چی؟ این اسمش نگاه تاریخ نگرانه یعنی یک تا... نگاه که همه چیز تفسیر با تاریخ میکنه امین جور که یک تفسیر مثلا دارون نگرانه همه چیز به دارون تفسیر میکنه درست؟ ولی اگر نه تاریخ به علم خودش همین جور که اقتصاد به علم خودش یعنی هست ولی اگر کسی میخواد همه چیز با اقتصاد تفسیر کنه اشتباه میکنه اگر میخواد همه چیز با تاریخ تفسیر کنه اشتباه میکنه اگر پس همینه همه چیز هم قبل از برود شما گفته شده نگفته بودم همه اینا گفته شده مجبورم به تکرار چون هم قبل نمیایین. اما بعد یعنی به جایی که گوش کنید یعنی میخواین ور... وسط حرف میپرین و نظر شما فقط نمیکن یعنی بالاخره یعنی این جوری شد دیگه. یعنی این همش گفته بودم داشتم دوباره میگم بازم به جای که دوباره بگم الان یعنی به داح رفتیم تو یک بحث که هیچ مدین یعنی هم از گروه رنوز تحبت شده و, و چند چیز و چند چیز من نمیتونم همش دوباره بگم خب بنابراین این این سلم که یک نمونه از نگاه تاریخ نگارانی نمونه مؤسع هم هست ولی تقریبا 95 درصد در تحقیقات نه فقط جامعی در شیش نسید نه فقط در اسلام نسید بلکه در کل شرط شناسی بلکه نوع نگاه معاصر قبل از انقلابی یا تغییری که این مرکز ایرانوس ایجاد کرده در علوم انسانی که جنبه یا یک تحلیل تاریخ نگارانه بوده یعنی در علوم ادیان و من ادیان مشروط و نتیجه شرایط تاریخی اقتصادی اجتماعی روز هم همون هر روزی، هر روزگاه در مثلا روانشناسی همینجور جامعه شناسی همینجور سیاست، طریق سیاسی همینجور همیش همیش همیش, همیش تفسیر می شد با روابط اجتماعی و شرایط تاریخی یک نفع بس این الان یعنی ببینید در یک کتاب اینجوری که بلاخره اسمش دیشی یا یعنی چی یعنی میخوام تشاییو معرفی کنم حالا چی هم هم بیشتر داره من سوال کرده بودم شما فکر کنید مثلا اگر کسی میپرس تشاییو چیست یا مسیحیت چیست به نظرتون چی باید گفت یعنی شما صد سال ندارین که بشینید توضیح بدین درست یه کسی باید بلاخره یا در یک کتاب صد دیویس صفه بشت جواب بدین یا در چند ساعت به نظرتون چی باید گفت؟ شما میخوان شروع کنیم مثلاً چی بیزد؟ اگه کسی من نمیدونم تشاییوخ نمیشنستم از فرانسه اومدم میگه آقا تشاییوخ چیست؟ برای بله هر کدوم یعنی اون دفعه گفته بودم برای جرس آینده یک فکری کنید یک چیزی فکر کردین اطمان یعنی مسلمان ها اصلا پس چیه پس؟ چی؟ دیگه من سوال کردم تشاییو چیست؟ من نمیشنستم تشاییو میپرسید. شما میگین گروه از مسلمان ها خب میگم مسلمان ها چیست؟ من بر... خب گفتم یک فرانسوی یک فرانسوی از فرانسه آمده خب برای فرانسوی کمونیستی نمیدونم من فرق نمیبریم من فرق نمیکنه. فرانسوی کمونیستی بگیم. حالا شما چی بهش میگیم؟ یعنی میگهش تاشايو چیست؟ شما میخوان یک کتاب بنویسین تاشايو. شما فقط برای کمونیستا بنویسی یا کمونیست که هیفه، ما میگم برای همه فرانسهای باید بنویسین. اگر میخوایم یعنی یک کتاب بنویسین. درست؟ ولی حالا بر فرق چون میگید باید پیش زمینه حالا میگم یک کمونیست. اون وقت چی میگیم؟ چی پیامبری در اون آورده. قرآن آورده؟ آها، یعنی پس یک اول شما اول تاریخ میگین که یک گروه موحد، یک خداپرست، درست؟ یک یک تا پرست. اینم یک چیزی به نام نبی دارن که کارش چیه که یک کتاب میاره که توش قوانین زندگی درست. شما قلعا نگفتید نه. بله ولی من میگم که من سوال من یعنی نیست که چی باید بگید؟ پرسیدم، من چی میگفتید اگر کسی از شما سوال میکنید؟ اگر شما بیشتر دوست داشتین از تاریخ، باید تاریخ بگید. من سوال کردم، اگر کسی من یه فرانسوی که نمیدونم آمدم، الان میپرسیم که تشایف چیست؟ شما چی میگفتی؟ چند ساعت دارین؟ من بعدا برمیگردم فرانسه. یا نه، شر... تل... صورت دیگه به اصطلاح که نه، میخوایید یه کتاب بنویسید برای فرانسوی ها، درست؟ خب، چی میگفتین؟ همین این من نگفتم چی باید بگین فقط در این زمینه؟ سوال بوده که ببینیم، بعدا بررسی کنیم باز این شما معرفی، بس خیلی خوبه، در ده دقیقه تشاییم معرفی کردیم من نه، شما گفتین دیگه یعنی شما این هم میگفتم، این،, این, این, این. خب نه، حالا پس چی میگفتی؟ خب، حالا خب. پس چی میگفتی؟ نمون، من نمیگرم مقدمه، حالا بعدا چی میگفتی؟ شاید به جیدی نه؟ یعنی چه امتظار اگر از من از مسیحیت میگفتیم؟ چه امتظار که من بگم؟ شما، شما میگم، شما، شما شما, شما, شما, شما, شما, شما اگر به اگر چی؟ نه؟ میگم شما آنهاان. خود شخص. شخص شما خودتون. خودتون. شما بیشتون. با که جای کسی دیگه جواب نگیشت. با که جای خودتون جواب دیگه. با که خودتون. آخدتی بیشتر نگذنید. نه اگر شما از شما. شما میخواید به نید مصیبی یا شما. شما. یه فای مسیریت میشه است. اگر نه این چاریت نداریم من هم باقوی را بیدیم. من از این نمیمون باشیم. من هم باقوی را باید. من هم باقوی را باید. لازم نیستم به آمیت دید. ولی اگر یکی این دفعه مثلا درمیتر چی دوست داریم باشیم؟ از که بله. ما خبی ما مثلا ما که شما یک کنجدی داریم شما چی داری ندارم. افتادو دو تا کنجد بطور داری شاید در کتاب میموند دستش شاید تا تا پس شما دوست داشتی چه که فاقی منبع شما منبع، یعنی مرکز اعتقاد و،, و منبع اعتقاد و عمار شما چیست این خیلی مهمه برسته که بزرم اساسی. یعنی محسیحی ها افراد دیگر افراد یک مجموعه مطرون که برای خودشان مخدده برمانه منبع و مرکز زندگی شی مانابی ادیا حال با شوید از مانابی با بیشتر یعنی یه من بابیه. و مقدار سیامیچی زیرسؤال نمیشه. نمقدار سودانی این مسیشی پذیرام. اون مسیبوفه مسال دوست. این قرار گیرته اون نامچی دستی گیره. آ، چه جواب بده مثلا اون جواب میده به سوال من؟ اگه چه دهی باغان میگم من این سوال کردم ولی گفتم ما برای جواب چیزی یعنی من درام شما غیر راج... از این چی می‌گوزیدید بدونید در برای تو هم چه کتابی شما یه یا مجموعه متون مباحث با همه کامون شد همین کافیه؟ یعنی نمیخوان بگونی چیکار کار میکنن مثلا عبادت چی جوریه؟ این مرسی شما در کوهان عبادت نو سرمان پیدا میکنید؟ باید، کجا در محادر کوهان نوستید؟ چندتا نماز در روز باید بخونید؟ کجا در کوهان نوستید؟ یعنی شما میخواد بگونید یعنی یک بار در هفته نماز یا بار یا هن روز شایدی اگر... شما... نه من. اگر کسی یعنی دیگرمان هندوکس نمی‌دیم، ممنون ممنون سلام به دو نام سلام چیکار می‌کنه؟ یاداش یا نه، امروز هندو بودن، فقط یک روز داره ساله <تصیح> داره، یا هر روز کسیه داره. یعنی هندو بودنش با خوندن کتابش درمی که یکی با خوندن قرآن فراد میتونه مثلا یعنی احکام مسلمانی بفرمید ببینید چقدر از احکام میتونید از قرآن در میدونید نه؟ نیچی چیز خواست پس به همی اندازه اگر تمام کتاب رو قد دسمی کنید اصلا نمیتونید از این که کدوم روز مسیحی ها باید مثلا یا نماز مشترکشان بیانده. اگر هم دارم نماز مشترکه ندارم. چند در روز چند نداره، داره. اصلا یعنی چیزی به نام نماز دارم ندارم. این از که تمام کتاب از اول سخته تا آخریت نمیتونی بفرمید. اصل نماز رو شما می اصل نماز چی؟ یعنی دعا. نماز دعا. بی جانان بی نماز زبان عربی هم صلاة یعنی دوآ بخوان. قرآن می خونید یعنی دوآ خوندید. آیا تو باید به طرف یک جایی توجه کرد یعنی قرات کا جدی نما. درست؟ اونم آیین داره ولی این تعظیم آیین تو گفتن نمیاد. اما اینکه مسلمان‌ها همین شرط گفتن نمیاد. برای رسیدن صلو نماز بخونید. خب نماز می خونید یعنی دوآ خوندید. نماز آمدن به دولی عربی صلاح و صلاح یعنی دعا، از و دعا همینه بس یعنی اگر کتاب یعنی معرفی می کنن بازم کافی نیست یعنی یک چیز مهمیه گفتم اول اصلش خیلی مهم اتفاقاً به نظرم اول بگیم یعنی کتاب که کدوم منابعشان مراجعش و چیه خیلی مهمه ولی هم اون یعنی که چی کار می مثلا چرا چیه؟ چی هست، چه جوری زندگی شما چی داره، چی نداره؟ این مهمه. درست؟ ولی اگر مثلا میگه به شما که بله در تجمع اساقف در قرن چهارم در میسه مثلا حکم از بودن حضرت مریم تصویر اجتماع یعنی مثلا اجماع اساطف بوده درست این به درد شما چیزی یعنی به درد شما برای شناخت مسیحیت چیزی نمیده یا مثلا بگم که در قرن چندم تασیس مثلا جزء اجماع کلیسا شده که ای شروع شده؟ در کدوم هم؟ درست؟ این ممکنه اگر میخواییم بعدا یک تخصص یعنی در باره تاریخ مسیحیت برای شما اهمیت داشته باشه. درست؟ برای چیزی که اصلا 99, 99 درصد مسیحیت اصلا نمیدونند به عنوان به اسطلاح مغیار تعریف مسیحی نمیتونه باشه. درست؟ ولی حد همه مسیحی ها میدونن که بله پاک، عید پاک یعنی چی برای ما. عید میلاد یعنی چی برای ما. ما اگر یعنی ندونیم پاک چیه، نه چطور میخوایم بفهمیم که بزرگترین روز برای مسیحی پاکه؟ پاکه. پاک چیه؟ یعنی اصلاً پاک. بلی خب بله یعنی روز به اسطلاح رستخیز عیسی بعد از صلیب شدن معلومه که مهمترین روزشانه. وقتی که شما یعنی فهم... اعتقاد داریم که کسی برای گناهان شما مثلا صلیم شده و بعد رستخیص شده یعنی که برای یا شده طبیعی که مهم تنین روزه. ولی بای باید بدونیم که این مروز نینه. اگر رو بگیم پاک چیه؟ یعنی ما اگر فرض کنیم که نمیدونم اگر کسی, قس... کسی قسی, قسی ابراهیم ندونه اون میگه خب چیه که این مثلا عید قربان شما میخوای گوستفند بکشید؟ چی داری اصلا؟ چه مسئله؟ فقط کشتن یک گوستفنده خب تو همه قبیله های افریقا و همین جاها یعنی یک روزی دارند که گاو یا گوستفند یا شطوری میکشند. چه جنبه معنوی داره؟ فقط گوشت خوریه نه یک زیربینا داره. اگر یک زیربینا نمیشنستم، معنی پیدا میکنه. یک روزی ممکنه همون تولد ممرزه هم فقط یعنی مناسبت پر اکشی در بانک مرکزی بشه یا در بانک سپا بشه دیگه هیچ کسی دیگه رنز ممرزه خبری نداره مونده که همین جور که اید ميلاد یا پاک مثلا بین المللی شده هیچ کسی نمیدونه باره چی ولی روزی که ما کدو میکنیم و چیز میخوریم و اینجوری ممکنه همین جور هم بشه؟ وقتی که الان بیشتر برای کرعه کشتی اهمیت میدن نیست ایو پس این زیر به نا مهمه و با گفتن مثلا این مسئله که خب تشاییوغ در زبان عربی مثلا اول اسم تعریف یعنی به معنی حزب این هم مثلا حزب طرف درام علی خب فوری اول چیزی میبنی دنبال یک مسئله سیاسی جنگ به درست؟ <سلام> درست. じAST, کسی <تصفيق> مثل کربن شروع میکنه الان بعداً می‌رشتیم، چون این مهم است. یه بیاری که می‌دهیم مثلاً اصل، اصل، اصل, اصل مسئله تشاییو تقسیم واقعیت به دو برد ظاهر و باطن، تنزیل و تعویل که هر چیزی که نازل شده یک تعویلی داره و اگر پیغامبر تنزیل آورده به این تمام نمیشه خب این خیلی باقیان به ما یک چیزی گفته در برای تشیق یعنی به ما یک قطبی داده یک مرکز نمیگه همشینه ولی یک قدبه یک مرکزه که همه چیز در این مدار این اگر امام در مقابل با پیغامبر داریم و باید هر دوتر آیت کرد چون ظاهر و باطن هر تا باید حفظ کرد درست؟ چون ما یعنی اگر پیغمبر برای تنزیل آمده امام برای تعویل آمده جزوی منابعشیه دیگه درسته و اینم هم جزوی که تشاییو یعنی حزب درسته ولی این چه هم بید داره این چه هم بید داره یکی همون مرکز کل وجوده یک شیعه چی نسبت به ادیان دیگر چه نسبت به مذاهب دیگر. چون میشه بلکه, بلکه حتی داخل شیعه میشه گفت که اون جزو به امتیاز کلن امامیه. امامیه که میگم اینجا یعنی شامل هم اسمایلیه. یعنی امامیه در مقابل زیدیه و غلات یعنی زیدیه که اصلا بغد ظاهری بغد و دیگر امام کم رنگ شده و فقط یعنی بعد از حسین هر کسی شمشیر میگیره و از بنو علی باشه امامه سواد داشته باشه شمشیر بگیره امامه درست ولی و غلات که تقریبا دیگر امام جایگاه خدا گرفته یعنی باطن کاملا، یعنی ظاهر گذشت کنار. پس واقعا یک نقطه بسیار اساسی اینجا، یک میره بسیار اساسی وقتی که این جمله گفته و بعدا تمام چیزهای مختلف بر مدار این نقطه قطبی ول کرده. شما مثلا الان اگه چی شما اگر کسی سوال میکنه مثلا در باره تشیع چی میخوان مثلا بگیم من است یه شاخه اینجوری اگر بکنیم مشکلات بعد که اون که شما فرقه اید. من هیچ اسلامه جدا نمیکردم بعد ما رو بعد از هم جدا کردیم یه کلامی فکری وجود یه مسائل تاریخی داره، این مسائل اعتقادی وجوده. اها. چیزی که شما گفتین نماز چند رکعت تو قران نیومده، اینا همش تو مسائل اعتقادی واسه میشه. مثلا مذهب اهل سنت 4 تا مظاهر اهل سنت داریم، یه مکتب مکتب شیعه داره که اونجا مفصلا بحث میشه از کجا اومده امام صادق اول اومدن بنیان گذاری کردن، بعد اومدن فقهای شیعه اومدن استفاده کردن از یه سری اصول منطق. اون اونو بکنه. یه سری موارد کلامی پیش میان. که مثلا فرق ما با اشعریه و معتزله چیه مثلا ما کجا قرار میگیریم بین این دو تا قرار میگیریم چرا شبیه اشعریه میشیم چرا شبیه معتزله یا فقط شو. این خیلی بنظم چه جالبه است مثلا شخص میدونه معتزله چیه یا اشعریه یا نمیدونه چون البته نتیجه اگر به معنای جمله شرطی اگر بر که درست باشه یعنی چون در برابر پروتستان درسته نمیشه بدون کاتولیک چون اون یک رد فعل نسبت به کاتولیک درست ولی از کاتولیک میشه بدون پروتستان یعنی ارائه کرد درست چون اون یک آب که رد فعل در یک تاریخ از کاتولیک بوده ولی اگر اینجوری قیاس کنیم تشاییوخ میشه که تشاییوخ یک رد فعل نسبت به مثلا این اشاعره و محتزله یعنی در ذات یعنی استقلال ذاتی نداره رد فعل نسبت به چیزهای دیگر هست خب و وقت به نظرتون به نظرتون این فرق بین امّن مسلم اول ممتازیل چند درصد مسلمان ممتازیل هستند؟ چند درصد ازشان؟ اصلاً یک درصدم نیستن نه یک اصلا وجود نداره دیگه الان. ممتازیل دیگر هشت سال که وجود نداره. نه خیر نیستش نیستش. ممتازیل دیگه نیستش. 80 سال که نیستش نه که یعنی چند صد یا یعنی چند ده سال 80 سال که از بین رفت ولن هم یا سلافی یا, یا اشعری و اگر هستن اگر... یا ولی... و بیشتر الان هم سوفی هن خبش نگه ما معترضه بگیرم که این شخص بس چرا ما در فرض باید در نظر بگیرم که این شخص که من میخوام تشریح بهش ایرای معرفی کنم باید اول آشنایی داشته باشه با یک مکتب که 800 سال دیگر وجود نداره این واقعا کار برای من دشوار کردن یک دشواری که نیازی اصلا نبوده چون اصلا هیچ کسی یعنی که با مسلمان ها آشنا شده هر جا اگر مثلا در مصر زندگی کنه یا در مراکش یا در هر جا با معتزلی آشنا نیست اگر اشنا هست یا با صوفیه یا با سلفیه یا به افراد معتدل که میگه یعنی تقریب اش اش آری مثلا تقریبا مکتب مثلا مکتب مقتدل نمیش نسن اگر این کاری مقتدل باشه اگر باید نه سا. شما داری میگیم دقیقه تر ما حالا داشتیم میگیم یعنی بالاخره این, این کار کوربه نگفت من یک کتاب نیویسم فقط کسی که اول مقتدل خوند اشعری خوند چیز بعد بهش مثلا میگم که شی چیست خود دیگه مسائل تاریخی، هم مسائل تاریخی تاریخ ائمه هم خودش نوشته که ولی بیشتر آثارش رو بیشتر می یعنی آثار نگاه از دیگه من که همهش خوندم درست ولی به نظرم اینجور نیست بله درسته فقط از مسائل فلسفی و معنوی ولی این فقط مسئله در باطن‌گیریی نیست فلسفه معنویات خوب فلسفه یعنی مثلا خود فلسفه یعنی پس شما میگی فلسفه یعنی باطن‌گیریی یعنی مثلا وجود و ماهیت یعنی باطن‌گیریی مسائل وجود و ماهیت و اصلات وجود و اصلات اصالت ماهیتو نمیدونم چی نه باطن‌گیریی آها بله. خب خب بله دیگه یعنی به فلسفی درست. درست تاریخی فلسف. آها. آه. درست یعنی و به اصطلاح یعنی وقتی میخواین معرفی کنید چیزی یعنی شما باید اول چیزایی که خیلی ظاهر یعنی مثلا شما میگم من شما در برای هند برای ما چیز بگم نگم اول که مثلا اونجا نمیدونم در خیابان اینقدر کسیفه یا چی یا چی یا چی یا در برایی میخوایین مثلا در مغنوییت که اینا دارن یا ندارن یعنی اگر از مستیت میخوام صحبت کنم یعنی میخواییم مثلا کتاب قانون کلیسا بگم که قوانین که کلیسا وز کرده مثلا چی یا میخواییم بدون مردم چه کار میکنن ها؟ چی گفتیم معرفی تشاییو معرفی تشاییو درست اگر معرفی تشاییو میخوان بگیم اما باد درست چه فرقی داره با معرفی کل اسلام یعنی سوتسنن فرقش چیه بگیم مثلا فرقهای فیقیه سیه و سننه چیان هره خوب. دقیقا آیا فرق بین شیعه و یکی از مذاهب تسنن بیشتر از باید فقی هست تا بین دوتا از این مذهب تسننی درست نه سوال من فرق شیعه با یکی از این مذاهب بر کدومش درست بیشتره خیلی بیشتره یا کمتره تا فرق بین دوتا مذهب سنی بین هم به نظرتون یا تقریبا یکی است نه یعنی باش کمتر تو مثلا بین و هم هم خب خب دیدی پس اگر میخوام معرفی یه از بوق فقی اصلا چه فایده داره باید بگم که در بعضی جزئیات درست شیعه موافقه با بعضی اشعاعی بعضی در بعضی جزئیات دیگر با بعضی از مالکی این لا یوسمین و لا یغنمن جور دیگه یعنی چیزی که نا اتس سوال کننده سیراب میکنه نا به اصطلاح سیرش میکنه درست خب خب پس پس بنابراین این تمام بد فقی بذارین که بگین که این مطالب یکی زاهد از ظاهر زندگی هم مثل هر جامعه مطالبی دارن که چه در برد بهستلح زندگی عبادی یعنی عبادات چه در زندگی اجتماعی معاملات یه مجموعه قوانی دارن که بالاخره با مجموعه که مسایر مسلمانان دارن خیلی فرق نمیکنند. درست و خیلی اهمیت نداره پس بنابراین تأثیر گذاشتن تأکید کردن روی مطالبه جهان بینی نه باتنگرایی جهان بینیه شیه تا به ستله که یعنی یا دو, دو بار یا سه بار دست میشورن یا, یا روی یک مهر می‌جران یعنی نماز می‌خوانن یا روی یک سجاده درست بس... خب جهانبینی این مهمه یعنی کورما ناج جا... یعنی شما گفتید باطنگیرایی یا نه میگم جهانبینی شیعه معرفی کرده درست حالا چی تقریرونی است که جهانبینی شیعه مبتنی با یک جمع بین ظاهر و باطن درست که هم ظاهر داریم هم باطن منته این ظاهر که همه یعنی به اصطلاح خصوصیت چندینی نداره از در اگر باشه، اگر ظاهر در چیزای دیگر بازم یک مسئله دیگه و یک در اگر باشه، دین چیزی نداره میکنیم واقعا یعنی میشه که مثل آیه لوبانی که اسلام علی مذهب خمسه نوشته، البته چرا به پنج تا اکتفا کرده میتونسته هم بگه زهیدی هم یک مذهب، <تصفيق> اسماییلی هم یک مذهب، این هم ولی منظورم میریم بالاخره اگر از بایدش فقی میبینیم باید بگیم یعنی چند تا قوانین شبیه به همه با چند تا اختلاف جزدی. البته از تو رو باید منظور اونو مشخص کنید. تو اولش گرایش هایی اسمایلی داشته. کربند گرایش هایی نه اسمایلی داره، نه شیخی، نه دوزده امامی. این اینا ساخته هایه. مثل کسی که ب کور بنا ولی این کسی نیست که گرایش و گرایش های اینجوری داشته باشه در برای اسمایلی نوشته و تدریزم میکرده تو آخر عمرم در برای اسمایلی تدریزم میکرد نه خود؟ آشان؟ برای اصلا برای چی بخواد تحت تأثیر کسی باشه؟ خودش یک فیلسوفه خودش یک را خودش خودش یک سیر و سلوکی داره درست؟ اون یک چیزی میگه در باره ی که هیچ کسی نمی‌تونه این کارش کنه میگه اولین تفکر متافیزیکی در اسلام اسماعیلی مطرح کرده شما یک کتاب قبل از اسماعیلی و قبل از اخوان نصرف به متافیزیک پیدا کنید ما قبول داریم که کسی دیگه غیر از اسماعیلی فکر متافیزیکی مطرح کرده من هم همه یعنی هر کسی یعنی به متافیزیک از... یعنی به اهمیت میده باید استطبال کنه واقعا یک فکر متافیزیکی عمیقه اگر کسی علاقه داره با فکر متافیزیک اسلامی بلاغره چاره نیست که با متافیزیک اسمایلی اشنا بشه و واقعا چیز عمده اومده یک فکر اسماعی... متافیزیکی در وزده مامی از اسمایلی گرفته شده فقط فرقش داره امام یعنی میگن داره فلان امام دارسته فلان امام دارسته ولی اگر دیگه چه فکری مونتیه کیه؟ شیعه به باتینگیری اسمایلی مثلا توجهی نداره شما یه دوره شیعه مثلاً با اخباری توجه داشت؟ اول, ب... شیره... اول برای چی اسمایلی به اخباری به باتینگیرایی شما مشخص میکنید؟ نشون شما... می‌دهم. یعنی من اسمایلی، اسمایلی، اسمایلی یعنی همدیه شاخه اسمایلی. فیق دارند، نماز میخونند، میرن مکه خب، پس شما بفرمایید، بشینید، منم یاد بگیرم از شما بفرمایید نم بفرمایید، شما میگید فکر ندارن. اصلا رساله عمدی هم دارند اسماییی وجود امروز نه؟ چند شاخی هستن. اسم شاخی اساسی و قالب، بحرا که در هند و در یمن و در سوریه و در ایران و همه جا هستند به عملی قاضی نقمن فاطمی عمل میکنند. یعنی, یعنی شما برین مکه اگر شما رفتین مکه میبینید اسمایلی ها هستن دیگه. یعنی برین نجف. اصلا یعنی عمده کار ساختن نجف اسمایلی. عمده پول برای نجف اسمایلی میدادن. اصلا ایران که نمیتونست زمان سدام. همهش اسمایلی هاد رو برای ترمیم میکردن. بله. بله. ما قاطعانه چیزای اینجوری نگیم بگیم من فک می‌کردم یا فکر می‌کنم؟ ما نظری مبنای فقه خب مبنای فقه زیدیه کدومه چه؟ زیدیه تا شیعه. نخیر، مبنای فقه زیدیه فقهی نیست، فقه انافی. زیدیه <laughs> تا از لحاظ کلام تنها ابادی مانده معتزله اتفاقا همون زیدیه. به ها یا گفتم درمیس نیستن چون زیدی نداریم در هره فقیق زهیدی اصلا از فقیق شیهی چی نداره اصلا سجد یوروی مهر نداره ازدواج مقدم نداره این همیشتون اسماییی اصلا وجود نداره نمیگن اشان به شیخه این هم اخترام مگر چیزی که اومر ممنوع کرده حقه <تصفيق> بله اسماعیلی رساله قاضی نورماند عائم الاسلام قاضی نورماند مصری که به اصطلاح رساله برای امام مؤسسه الازهر یعنی الازهر کی تاسیس کرده اسماعیلی اسماعیلی الازهر تاسیس کردند در مصر اصلا مصر که شهر مصر قبل از اسماعیلی وجود نداشت یک چیزی یک, یک پادگاه نظامی به نام فستاد بوده اسمایلیه که از مصر آمدن مصر یعنی کشور فتح کردن شهر مصر دو... تحسیز کردن و حکومت کردن و... همون هم دیگه یعنی ولی مصر خود شهر نه کشور شهر مصر و الازهر فاتیمی ها تحسیز کردن و ساختن و در تدریس همون دقایم اسلام که از منابق بخانون انوار اگر نگاه میکنید اتفاقا جزوی منابیه به هرالانوار دقیقی ایمون اسلام قاضی نعمان بعد اسماییلیه فقط یعنی جزوی یک شاخه به نام مستقی